شوهر و عاشق یک دیگر را میبوسند ولچانینوف جدا میخواست بداند در حالی که اولین برخوردش را با لیزا به خاطر میآورددیشی تا چند لحظه پیش من گیج بودم تا چند لحظه پیش فرصت نداشتم که افکارم را تحقق بخشم اما اکنون میخواهم بدانم برای اینکه فورم بفهمد با بیحسلگی که گریبان گیرش شده بود میخواست مستقیما به منزله ترسوتسکی برود، اما بلافاصله تغییر عقیده داد. نه، بهتر است او به خانه من بیاید و من آن وقت سعی میکنم به این کار لعنتی خاتمه بخشم. با حرارت به کار مشغول شد، اما این بار پس کرد که بسیار گیج است و نمیتواند امروز کار را شروع کند. ساعت پنج، همان وقتی که خودش را آماده می کرد که غذا بخورد، ناگهان برای اولین بار یک فکر بسیار مسخره ای به خاطرش رسید. شاید، در حقیقت، دخالت مستقیم خودش در این دعوی از این دادگاه به آن دادگاه رفتن، تعقیب کردن وکیلش که دیگر از او فرار می کرد، همه اینها باعث می شد که کارش به کندی پیش رفت کند و دچار وقفه گردند. به این قضیه خود از ته دل خندید. با خوشحالی بیشتری افسود، اگر دیروز این فکر به خاطرم رسیده بود، بسیار گین می شدم. با وجود خوشحالیش، تجزیه و تحلیلی که از یا میخواست بکند بیهسلگیاش بیشتر میشد و بالاخره به فکر فرو رفت اما هرچند که فکر مقشوشش به چیزهای بسیاری میرسید هرگز به آن چیزی که محتاج بود منتهی نمیکردید بالاخره به این نتیجه رسید من به او محتاجم من به این مرد احتیاج دارم ابتدا باید از شر این مرد خلاص شد و آن وقت تصمیم گرفت این یک دوه است. هنگامی که ساعت هفت به خانه برمیگشت او پاول پاولویچ را نیافت ابتدا متحجب شد بعد خشمگین گردید و بالاخره کاملا از خود بیخود و بیچاره شد داشت می ترسید. گاهی در اتاق راه می رفت و گاهی روی نیم تخت می و به لنگر ساعت خیره می شد و با خود می گفت خدا میداند، خدا میداند چگونه این کار خادمه خواهد یافت نزدیک ساعت نه بود که ناگهان پاول پاولویچ سر رسید. ولچانینوف اندیشید. اگر این مرد میخواست نیرنگ بزند، هرگز بهتر از این لحظه نمیتوانست مرا قافرگیر کند. زیرا در این لحظه بسیار گیج و منگ بودم. اما ناگهان خوشحال شد و خود را کاملا آرام یافت. ولچانینوف با لحنی بشاش و گستاخ از او پرسید چرا زودتر نیامده است. پاول پاولویچ زورکی زد. و بی خیالی نشست، نه کاملا مانند شب گذشته و با خون سردی کلاهش را روی صندلی نزدیک خود انداخت. فوراً ورچانینوو این رفتار خون سردانه را ملتفت شد و روی آن حساب کرد. با آرامش بی هش و زواید، بی استراب از مسافرت خود، از پذیرایی گرمی که از لیزا کرده بودند، صحبت کرد. ورچانینوو گفت که این اقامت لیزا در آنجا تا چه اندازه برایش مفید است و کم کم مثل اینکه لیزا را فراموش کرده است صحبت را برگردانید و از پوگوارلسف ها و از مهمان نوازی آنها و از دوستی که او را با آنها یکی کرده بود از مهربانی پگورلتسف، از نفوذش و بسیاری مطالب دیگر صحبت به میان آورد پاول پاولویچ با بیخیالی گوش میداد و گاهگاهی با لبخندی ناراحت کننده و موزیانه به ولچنیوف خیره می‌شد. پاول پاولویچ مخصوصاً با لبخندی ناراحت کننده گفت چه آدم سرسختی هستید؟ ولچانی با مهربانی گفت و شما امروز بسیار موزی شده اید پاول پاولویچ ناگهان ایستاد. یا بهتر بگوییم از جا پرید میتوان گفت که منتظر چنین فرصتی بود و گفت چرا مانند دیگران موزی نباشم؟ ولچانی گفت راحت باشید فکر کردم بلایی سرتان آمده است پاول پاولویچ فریاد کشید؟ حقیقتاً هم بلایی به سرم آمده است چطور؟ پاول پاولویچ کمی در جواب دادن درنگ کرد آن، بله، این استپان میخایلوویچ ماست که کارهای عجیب و غریبی کرده است همان با بهترین جوانان فهمیده پترزبورگ مردی که در بهترین وضع اجتماعی بزرگ شده است چطور؟ دوباره شما را نپذیرفتند؟ برعکس، درست این بار مرا پذیرفتند برای اولین بار گذاشتن داخل شوم من خطوط چهره را درست تماشا کردم فقط خطوط چهره یک مرده ای بود ورچانیوف بسیار متعجب شد هرچند این موضوع مطلبی نبود که او را تا این اندازه متعجب کند و گفت چطور با گوتوف مرد بله با گوتوف. دوست سمیمی دوست شش ساله بعد از ظهر دیروز مرد و من دیگر چیزی نمیدانم شاید در همان ای که من به احوال پرسیش آمده بودم فردا جسد را برمیدارند و به خاک می‌سپارند او اکنون در تابوت کوچک خود خفته است تابوتی که از مخمل قرمز رنگ پوشیده شده با های طلایی او تپش شدیدی کرد و مرد آنها مرا پذیرفتند من خطوط صورتش را تماشا کردم هنگامی که می‌خواستم وارد شوم به آنها گفتم او مرا مانند یک دوستی حقیقی خواهد پذیرفت برای همین بود که مرا پذیرفتند اما چه نیرنگی به من زد، این دوست سمیمی، این دوست شش ساله، شاید فقط به خاطر او بود که من به پترزبورگ آمدم. ولچانی در حالی که میخندید گفت، برای چه نسبت به او خشمگین هستید، او اکنون مرده است. این مطلب را برای این میگویم که افسوسش را میخورم، دوست زی قیمتی بود، او برای من اینطور بود. پاول پاولویچ در حالی که لجوجان دو انگشتش را در روی پیشانی برهنه گذاشته بود و مانند شاخیان ها را راست نگاه داشته بود، موزیانه به آرامی لبخند میزد مانند اینکه از یک گستاخی و بیهیایی موزیانه سرماست شده بود. چند دقیقهی به همین حال با شاخی که ساخته بود باقی ماند و در حالی که در چشمهای ولچانی خیره شده بود، موزیانه لبخند می زد. دل چانینوف مانند اینکه شبهی را دیده است خوشگش زده بود اما این حیرت لحظه‌ای کوتاهی دوام یافت. یک لبخند آرام و است که گستاخی را می‌رساند آهسته روی لبهایش نقش بست با بی‌قیدی در حالی که کلمات را می‌کشید پرسید این دیگر چه معنی دارد پاول پاولویچ در حالی که انگشتانش را پایین می‌آورد گفت این شاخ است. یعنی شاخ شما پاول پاولویچ که دوباره موزیانه لبخند میزد گفت بله شاخهای من که شرافتمندان آنها را به دست آوردم هر دو ساکت شدند ویلچانینوف گفت شما جسورید برای اینکه که شاخهایم را به شما نشان دادم <تصفيق> آلکسیوانویچ بهتر از چیزی برایم بیاورید تمام سال هر روز خدا در شهر ته از شما پذیرایی کردم بفرستید یک بطر مشروب بیاورند، گلویم است با کمال میل، زودتر میباید به من گفته باشید شما چه میخوایید بیاشامید؟ پاول پاولویچ که در چشمهای او با حالت تحریک کنندهی خیره شده بود و در عین حال چشمهایش از یک استراب عجیبی حکایت میکرد گفت برای چه شما؟ بگوید ما، ما با هم میاشامیم اینطور نیست؟ شامپانی مینوشید غیر از این چه میشه نوشید؟ ما هنوز به آن مرحله نرسیده ایم که ودکا بنوشیم. با آرامی ولچانیوف بلند شد. ماورا را صدا کرد و دستورات لازم را داد. به سلامتی این ملاقات سعادتمندانه ما بعد از نه سال جدایی. و پاول پاولویچ لبخند میزد اما ناشیانه بود. اکنون شما تنها دوست حقیقی من هستید. دیگر استفان میخوای نیست؟ همانطور که شاعر میگوید پاتروکل بزرگ دیگر نیست. اما ترسیت بدنام زنده است. و همین که به نام ترسیت رسید با انگشت به سینه خود اشاره کرد. بلچانینوف بسیار خشمگین شده بود و مدتی بود که به زحمت خود را نگه میداشت. تایی پس بهتر است هرچه میخواهی زودتر بگویی من از جملات کنایه دار خوشم نمی آگاد. خب به من بگویید اگر اینطور استپان میخایلوویچ را متهم میکنید دیگر او را به سادگی با گوتوف نمیگفت مرگ کسی که شما را آزار رسانیده است باید خوشحالتان کند پس برای چه ناراحت شده اید چه خوشحالی برای چه خوشحال شدم من بر حسب احساساتتان قضاوت میکنم پس آه آه شما در مورد احساسات هم اشتباه میکنید دانشمندی گفته است دشمنی بمیرد خوب است اما یک دشمن زنده بهتر است <تصفيق> ورچانینوف موزیانه با جسارت گفت من اینطور فکر میکنم که شما او را مدت پنجاه سال زنده دیدید و وقت داشته که با فراغ خاطر او را مشاهده کنید پاول پاولویچ دوباره ناگهان از جا پرید اما اون وقت اما آن وقت میدانستم به نظر خوشحال میآمد که بالاخره سوالی را که مدت‌ها انتظارش را داشت از او کرده بودند. الکسی ایوانوویچ، برای چه به پر و پای من میپیچید؟ و در نگاهش ناگهان حالت مخصوصی که کاملا تازه و ناگهانی بود پیدا شد که کاملا خطوط صورتش را عوض کرد به حدی که شکلک که نفرت انگیزی به خود گرفت. ولچانینوف که ناگهان متعجب شده بود با ناراحتی گفت: آیا ممکن است که شما از این موضوع هیچ چیز نمی دانستید؟ آیا ممکن بود که چیزی از آن بدانم؟ آیا ممکن بود؟ آه ای نسل جوپیتر یک انسان برای شما فقط حکم یک سگ را دارد و شما همه مردم را با طبع کوچک و پست خود می سنجید این هم مال شما نوش جان کنید و دیوان وار با مشت روی میز کبید اما ناگهان از این حرکت خود وحشت کرد و با ترس به چنین این افنگ ورچانینو حالت موقری به خود گرفت. پاول پاولویچ، به من گوش کنید. این را بدانید که برایم کاملاً یکسان است که شما آن را می‌دانستید یا نه. اگر آن را نمی‌دانستید، از هر جهت شرافتتان حفظ شده است. در صورتی که وانگهی، من نمی‌فهمم چرا شما مرا محرم اسرار خود کرده اید. پاول پاولویچ در حالی که به زمین می‌نگریست، زیر لب گفت: از شما صحبت نمی کردم. متغیر نشوید از شما نبود ماورا با شامپانی وارد شد پاول پاولویچ که از این انصراف خاطر خوشحال شده بود فریاد کشید این هم ماورا لیوان لیوان بیاورید بسیار عالی است عزیزم دیگر چیزی از شما درش درشم که باز است ای موجود عزیز سلامت و پر افتخار باشی خب بریزید پاول پاولویچ که دوباره بر خود مسلط شده بود با جسارت به ولچالینف مینگریست. ناگهان ما نیشخند گفت اقرار کنید که همه اینها برای شما بسیار جالب است و ابدا کاملا یکسان نیست همانطوری که چند لحظه پیش قضاوت کردید و حتی شما بسیار می میشوید اگر من بلند شوم و در این لحظه بروم به اینکه هیچ گونه توضیحی به شما بدهم. حقیقتا ابدا از این موضوع اندوهگین نمی شدم. لبخند پاول پاولویچ می گفت، دروغ میگویی. بسیار خوب، ببینم. شراب را در لیوان ریخت و در حالی که لیوانش را بر می داشت گفت. به سلامتی بنوشیم، به سلامتی دوست من استپان میخایلویچ که به رحمت ایزدی پیوسته است. ولچانینوف در حالی که لیوانش را روی میز می گذاشت گفت. من به این مناسبت نمی نوشم. خب چرا؟ این نوشیدن جالبی است. به من بگوید امشب وقتی که اینجا آمدید. مست نبودید کمی نوشیده بودم برای چه این را پرسیدید منظوره به خصوصی نداشتم اما به نظرم آمد که دیروز و مخصوصا امروز صبح شما به یاد مرحوم ناتالیا واسریونا افتاده اید و صادقانه بر او تاسف میخورید کی به شما گفت که من صادقانه بر او تاسف نمیخورم حتی در این لحظه ها پاول پاولویچ بار دیگر مانند اینکه فنری زیرش گذاشته اند از جاپرید صحبت بر سر این موضوع نیست اما قبول کنید که در مورد استفان میخائیلوویچ ممکن است اشتباه کرده باشید. آن وقت بسیار ناهنجار است. پاول پاولویچ موزیان خندید و چشمکی زد. آه، شما حتما می‌خواهید بدانید که چطور قضیه استفان میخائیلوویچ را فهمیدم. <تصفح> ورچانینو سرخ شد. یک بار دیگر گویم که این موضوع برایم یک سان است. خشمگینان اندیشید کاش در همین لحظه میتوانستم او را با همین بطری بیرون بیاندازم و به سرخی صورتش افسوده شد پاول پاولویچ با لحنی دلگرم کننده در حالی که لیوانش را پر می کرد گفت همیتی ندارد چند لحظه پیش به شما توضیح دادم که چگونه همه مطالب را فهمیدم و من از احساسات تند شما خوش سیگاری به من بدهید زیرا بعد از ماه مارس این هم سیگار الکسی وانوویچ بعد از ماه مارس و بی‌بندوبار شد و این از جریان واقعه گوش کنید. همانطور که میدانید دوست عزیزم سل رفته رفته صمیمیتش بیشتر میشد مرز عجیبی است. اغلب مسلول می‌میرد و ابدا شک نمی‌کند که فردا دیگر زنده نیست. باز هم تکرار میکنم که ناتالیا واسیلیونا پنج ساعت قبل از مرگش پیشنهاد می‌کرد که برای دو هفته نزد عمه‌اش در چهل فرسخی منزل ما برود. همچنین این به این عادت عمومی اغلب ها و همانطور شاید آشاغشان آشنایی دارید که علاقه دارند تمام آثار و علائم شده ی مکاتبات آشغالی خود را نگهداری کنند. آیا بهتر نیست که همه را بسوزانند؟ <تصفيق> اما نه کوچکترین تکه کاغذ در های کوچک میز تحریرشان مرتب دستبندی شده است. حتی آنها را نمره و بر حسب سال و تاریخ تبقیب میکنند. آیا این کار آنها را تسلی میدهد؟ نمیدانم. شاید این کار خاطرات دلپذیرشان را دوباره زنده می کند ناتالیا واسیدیونا در حالی که پنی ساعت قبل از مرگش پیشنهاد می کرد که در جشن امه شرکت کند مسلما ابدا اطلاعی از فرارسیدن ساعت مرگ خود نداشت تا آخرین لحظه منتظر دکتر کخ بود قضیه چونین بود ناتالیا واسیدیونا مرد آن جعبه ی آج نشان نقره کاری شده در کشای میز تحریرش باقی ماند. این صندوقچه با کلید کوچکش بسیار زیبا بود این یک جعبه فامیلی بود که از مادر بزرگش به او عرض رسیده بود بله این جعبه کوچک بود که همه چیز را برایم آشکار می کرد می گویم همه چیز را بدون استثنا. روز به روز سال به سال در مدت بیست سال اچتور استپان میخایلوویچ تمایل قابل ملاحظه‌ای به ادبیات داشت. حتی یک داستان عاشقانه بسیار احساساتی را از یک مجله با شرح و تفسیر فرستاده بود. در این جعبه در حدود 100 مقاله از آثارش وجود داشت. درست است که اینها در مدت 5 سال جمع شده بود. بعضی از مقالات به دست خود ناتالیا واسیلویونا حاشیه نویسی شده بود. آیا برای یک شوهر این امر دلپذیر است؟ <تصفح> چه فکر میکنی؟ ولشانینوف با یک دقت سرسری به خاطر آورد که هرگز یادداشتی به ناتالیا واسیلیفنا ننوشته است. او دو نامه از پترزبورگ نوشته بود اما همانطور که شایسته است به نام زن و شوهر بود اما آخرین کاغذ فوری ناتالیا اتال را که به او اعلام قطع رابطه کرده بود بی جواب گذاشته بود داستانش تمام شد. پاول پاولویچ یک دقیقه ساکت ماند به طرز ناراحت کننده ای لبخند میزد و منتظر سوالی بود در حالی که کاملا معلوم بود که ناراحت شده است، بالاخره گفت: شما به این سال کوچک من جوابی ندادید. به کدام سال؟ در مورد احساسات دلپذیر شوهری که را باز می‌کند؟ ورشنینوف در حالی که با تأنید استایش را بالا می‌کرد، گفت: این کار به من مربوط نیست. در اتاق به قدم زدن پرداخت. و من شرط می‌بندم که شما اکنون میاندیشید. برای اینکه این که شاخهایت را به من نشان دادی احمقی بیش نیستی شما متنفرید شما بر برعکس فکر می‌کنم که شما از مرگ کسی که شرافتتان را لکهدار کرده است بسیار ناراحت شده اید و مخصوصاً که شراب هم نوشیده اید در این موضوع هیچ چیز خارق العاده ای نمی بینم و اکنون خوب میفهمم برای چه شما میخواستید که با زنده باشد من به این قمقاستی شما که با خشم و غضب تو است، احترام میگذارم اما باغی شما برای چه به باگ و اوتوف احتیاج دارم؟ مربوط به خودتان است. من شرط می‌بندم که مقصودتان یک دوئل است. ورشنینوف که رفته رفته از خود بیخود شد فریاد کشید: بر شیطان لعنت!" فکر می‌کنم که یک مرد شرافتمند در یک چنین وسعی با این کلمات مزهک این قیافه های مصنوعی ناشیانه، این لابه‌های مسخره و این کنایه‌های پست که او را رفته رفته لکهدار مینمایند. خود را پست و ناچیز نمی کند بلکه برعکس مستقیم، سریع و صادقانه مانند یک مرد شرافتمند رفتار می‌کند. اما شاید من مرد شرافتمندی نیستم. این هم به خودتان مربوط است. خب در این صورت برای چه میخواهید با گوتوف زنده باشد؟ فقط برای اینکه دوست نازنین خود را تماشا کنم. تا سر یک بطری را باز کنیم و با هم بنوشیم. او قبول نمی‌کرد که با شما بنوشد. برای چه؟ نجابت چنین را داشت شما که با من می نوشید ارزش او بیش از شما بود من با شما ننوشیدم چطور ناگهان اینطور خودخواه شدید ولشنینوف از عصبانیت خنده‌ای بلندی کرد <تصفح> با شیطان لعنت شما مسلماً درنده خو هستید و من گمان می کردم که فقط یک همیشه شوهرید و هیچ چیز دیگر نیستید پاول پاولویچ در حالی که گوشش را تیز کرده بود پرسید همیشه شوهر یعنی چه؟ چه معنی میده؟ یک نوشوهر است. اگر بخوام شعر بدهم خیلی طول میکشد. بهتر است که گورتان را گم کنید و بروید. وقت رفتن است. وانگهی مرا کسل کردید و برای چه گفتید که درنده خو هستم؟ الان گفتید درنده خو؟ گفتم که شما درنده خو هستید. فقط برای شوخی بود. درنده خو کیست؟ شما رو به خدا و مسیح قسم می‌دهم شر بدهید آلکسی ایوانوویچ خواهش میکنم. ولشنینوف که دوباره غضبناک شده بود فریاد کشید آه نه بس است بس است وقت رفتن است گورتان را گم کنید پاول پاولویچ ناگهان بلند شد نه کافی نیست حتی اگر مزاحمتان هستم کار ما تمام نشده است زیرا باز هم باید به سلامتی هم بنوشیم بنوشیم و بعد میروم اما اکنون کار ما تمام نشده است پاول پاولویچ خواهش می کنم الان گورتان را گم کنید و بروید می روید یا نه می توانم گورم را گم کنم اما قبل باید بنوشیم گفتید که نمی خواهید با من رو در رو بنوشید و من می خواهم که شما رو در رو با من بنوشید دیگر شکلک در نمی آورد و موزیان لبخند نمی زد. همه چیز او دوباره تغییر شکل داده بود. لحن کلامش، شکل ظاهریش به قسمی تغییر یافته بود که ولچانینوف کاملا به اشتباه افتاده بود. پاول پاولویچ که با زور دست ولچانینوف را گرفته بود ادامه داد: بسیار خوب، بنوشیم مارکس او را با وضع عجیبی نگاه می کرد که ولچانینوف چاره ای نداشت جز اینکه بنوشد. ورچانینوف با لکنت زبان گفت: بسیار خوب بنوشیم درست دو لیوان شراب مانده است قبول دارم که این کار من رزالت است اما حالا به سلامتی هم می لیوان خود را بی زحمت بردارید لیوانها را به هم زدند و نوشیدند بسیار خوب حالا که اینطور است، حالا که اینطور است. پاول پاولویچ دستش را به پیشانی برد و چند لحظه به همین حال باقی ماند. به نظر ولچانینوف آمد که او آخرین حرف خود را خواهد زد. اما پاول پاولویچ هیچ نگفت به ولچانینوف نگاه کرد و آرام، موزیانه، مانند چند لحظه پیش با تمام قوا تبسم کرد و چشمک زد. ولچانینوف در حالی که پایش را به زمین میکوبید با خشم فریاد کشید. از جانم چه میخواهید؟ ای مست قال مرا مسخره میکنید. پاول پاولویچ با عجله گفت داد نزنید داد نزنید برای چه داد میزنید آیا میدانید که اکنون برایم چه ارزشی دارید؟ و به نظر میآمد که با دستهایش میخواهد او را آرام کند و ناگهان دست ورچانینوف را گرفت و آن را بوسید ورچانینوف وقت آن را نداشت که از تعجب به خداید. این است آن ارزشی که اکنون برایم دارید و بعد از این میروم و گورم را گم میکنم بالاخره ورچانینوف به خود آمد و فریاد کشید. صبر فراموش کردم به شما بگویم. پاول پاولویچ که نزدیک در بود برگشت ولچانی در حالی که سرخ شده بود و نگاهش را به سمت دیگری منحرف کرده بود با لکنت زبان گفت لازم است فردا حتماً به خانه پگورت صفحا بروید با آنها آشنا شوید و اظهار تشکر کنید حتماً باید این کار را بکنید پاول پاولویچ با ناراحتی زیادی جواب داد حتماً حتما من خوب میفهمم. و با حرکت دست فهمان که یادآوری این مطلب بیفایده بود. و وانگهی این لیزا با بی حوسلگی منتظر شماست. من قول دادم. لیزا پاول پاولویچ ناگهان دوباره نزدیک شد ماننده اینکه هزیان میگوید فریاد کشید؟ لیزا میدانید برایم چنداز ارزش داشت؟ چنداز زش داشت و چنداز ارزش دارد؟ اما بعد خواهیم دید، همه اینها رو بعد خواهیم دید و اکنون آلکسی ایوانویچ برایم کافی نیست که با شما نوشیدم هنوز رضایت خاطر دیگری میخواهم کلاهش را روی صندلی گذاشت و مانند چند لحظه پیش نفس زنان او را نگاه کرد ناگهان پیشنهاد کرد آلکسی ایوانویچ مرا ببوسید برچانی در حالی که خود را به عقب میکشید فریاد زد شما مستید؟ بله مستم اما با وجود این مرا ببوسید الان دست شما را نبوسیدم آلکسی ایوانوویچ مانند این که به مغزش کوبیدند چند لحظه ساکت ماند اما ناگهان به طرف او خم شد و در حالی که پاول پاولویچ به زحمت تا شانهش میرسید رسید لبهای او را که از آن بوی تند شراب متساعد می شد بوسید کاملا مطمئن نبود که او را بوسیده است یا نه پاول پاولوویچ با شادی مستانهی در حالی که چشمانش میدرخشیدند فریاد کشید. بسیار خوب. اکنون، اکنون، اکنون همین را می خواستم. آن وقتها می اندیشیدم. آیا ممکن است که ناتالیا و هم فکر کرده بودم اگر او هم؟ پس دیگر به کی اعتماد کنم؟ و ناگهان به گریه افتاد. اکنون میفهمید چه دوست با برایم هستید. در حالی که کلاهش را بر می داشت فرار کرد مانند اولین برخورد با پاول پاولویچ فلچانینوف چند دقیقه بی حرکت بر جای خود میخکوب شد آه، مرد مسخری مستی بیش نیست فقط همین است و به نظر می آمد که با یک حرکت دست می خواهد تأثیر وقای این شب را از خود دور کند. هنگامی که لباسش را کنده و خوابیده بود با تمام قوا تکرار کرد فقط همین است و جز این